با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان گرامی تلویزیون رنگین کمان بخش 28 برنامه گفتار در باری را شروع می کنم در بخش 27 تا به آنجا رسیدیم که کستوی بنده از کتاب بخانید و داوری کنید کستوی جای همون سیعیگری نوشته بود و تکم... تکمله این کتاب بود چهار ماه بعد منتشر کرده بود به دانجا رسیدم که کستردی در مورد امام زمان که به خودش بون امام ناپیدا میگوید بحث میکنند. یکی یکی امام ما رو باز بازم میشماریم در آینده مفصل گفته رسید به امام جفر صادق و بعد از اون هم رسید به امام زمان و در مورد امام زمان خدمت هستم که میگوید که پس از منگ حسن الاسکری یا از ده همین امام شویعان گفتم اینو تکرار میکنم تا مقدمه باشه بر گفتار بعدیم در بین پیروانشان اختلاف پدیدار شد گروهی امامت را تمام شده انگارند. دسته دیگر برادر او جعفر را به امامت برگزیدند تعداد دیگری مدعی شدند که از او فرزندی پنج ساله باقی مانده که جانشین وی میباشد و او را امام دوازدهم نامیدند و تاریخ مذهب شیعه دوازدهمی نیز از این زمان شروع گردید کسسدی شخصا معتقد است که از این امام فرزندی باقی نمانده بود لیکن گروهی به خاطر سودجویی و در رأس آنان شخصی به نام عثمان ابن سعید مدعی شدند که از امام فرزندی پنج ساله بر جایی مانده است که در سرداب نهان می باشد همین شخص خود را باب یاددر امام نامیده و میگفت، آن امام مرا میانه خود و مردم میانی گردانیده شما هر سخنی می دارید به من بگویید و هر پولی دارید به من بدهید آنگاه گاکسروی دلایل فراوانی به عدم وجود امام زمان آورده و از جمله مینویسد داستان بسیار شگفتی است آن بچه‌ای که اینان میگفتند کسی ندیده و از بودنش آگاه نشده بود و این نپذیرفتنیست نیست که کسی را فرزندی باشد و هیچکس نداند آنگاه امام چرا رومی پوشید چرا از سرداب بیرون نمی آمد؟ اگر امام پیشواست باید در میان مردم باشد و آنان را راه برد نهفتگی چه می بود؟ وی ادامه میدهد که چهار نفر به مدت هفتاد سال خودشان را جانشین ویژهٔ امام دانسته و به نام نواب خاصه به نام نواب خاصه او از قبل چنین موقعیتی سود میبردند پس از این مدت گروهی به نام روحانیان شیعه خود را نواب عام نامیده و زمام امور شیعیان را در دست گرفتند در گفتار دوم این کتاب کتاب بخوانید و داوری کنید که ابتدا این عقیده شیعیان را که معتقدند که امام علی ابن ابی طالب برگزیده خداوند است مورد نقد قرار داده و به نهج البلاغه استناد کرده و ضمن ارائه ای از علی به ماویه که من ترجمه فارسیش رو در اینجا آوردم ایشون هم عربی رو نوشته هم فارسی رو ضمن ارائه نامه ای از علی بن معاویه روشن میکند که به صدا روشن میکند که خود علی در این نامه به معاویه اظهار داشته است که در نتیجه بیعت مردم مردم مهاجر و انصار او به خلافت انتخاب شده است و نتیجه میگیرد که برگزیدگی علی از جانب خدا به امامت پایه و اساس ندارد و به دنبال آن کسری در مورد داستان قدیر خم و نیز این عقیده شیعیان که پیغمبر در شب آخر زندگانی خیش دوات و قلم خواسته است و علی را به جانشینی خیش مایین سازد لیکن عمر با بیان این مطلب که محمد حضیان میگوید از این عمل جلوگیری کرده است به سخن می نشیند در این باره که گستری اشاره می کند به نامه علی به عمر که گویا در همین با متن عربیش رو در اونجا آورده بنده به متن فارسیش اشاره می کنم می نویسد که همان مردمی که با راویه می نویسد علی همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان برای خلافت بیعت کردند به من هم دست بیعت دادند و به سویم روی آوردند و نابرین سزاوار نیست که آنان که حضور داشتند حرف خود را زیر پا بگذارند و انتخابشان را نادیده بگیرند و کسانی هم که نبودند نمیتوانند چون این چیزی را رد نموده و نپذیرند و مشورت درباره خلافت حق مهاجرین و انصار است چون چنانکه آنها مردی را برگزینند و امامش بخوانند که خوشنودی خدا در این کار است اما اگر شخصی از تصمیم آنها سرپیچی نماید و نوای عیبجویی بنوازد و تهمت ناروا بزند هر وادارش می دوباره به راهی که از آن خارج شده است برگردد و تمکین بکند ولی همین که گستاخی به ورزد و رام نشود با او به پیکار می پردازند. زیرا به راه راستی که مؤمنان می روید نمی روید. آنگاه هرچه خدا بر سرش آرد شایستگی آن را دارد ای ماویه. به آین هم سوگند که چون با دیده خود نه از روی خودخواهی بنگری در که دامنم از خون عثمان از همه مردم پاکتر است و میبینی که در این هنگام از او دور و برکنار بودیم و این تویی که چون این جنایتی را به من نسبت میدهی و روی حقیقت سرپوش می نهی واجهی بود ای بود مطلبی بود از نهجل بلاغه خب و اما در مورد قدیر خم توضیح داده که است بین مکه و مدینه پیغمبر اسلام در موقع برگشن از حق جلودا در این ناهیه خطبه به دین شهر ایراد کرد به زبان عربی و علی رو به جانشینی خود انتخاب نمود بنابراین کاستوی هم از قدیر خم و هم از این مطلب که میگویند پیغمبر میخواسته قلم دوات خواسته عمر نگذاشته انتقاد کرده قسمت دوم میگوید که لیکن عمر با بیان این مطلب که محمد ازیان میگوید از این عمل جلوگیری کرده است به سخن می نشیند و از آن دو مطلب را رد می کند در مورد قدیر خم پس از تفسیر جمله پیغمبر مردود شمردن انتخاب علی به عنوان جانشین خیش اضافه می کند از اینها هم گذشته مگر یاران پیغمبر که سالها باوی به سر برده و در راه او جانبازی ها کرده بودند زبان او را نمی فهمیدند. دل دلبستگی آنان به پیغمبر و دستورهای او کمتر از شیعان دیگر بود این چه باور کردنی است که پیغمبر علی را خلیفه گرداند و یارانش آن را ناشنیده گیرند و به گرد سر ابوبک در آیند. پس چرا با دیگر دستورهای پیغمبر این کار را نکردند؟ و اما راجع به برنامه دومی که پیغمبر دوات و قلم خواسته در این مورد هم مفصل می نویسد در کتاب به خانید و داوری کنید تکار می کنم من نمیدانم این داستان تا چه اندازه راست است اگر راست است رفتار عمر بسیار به بوده این دلیل است که عمر معنی اسلام را بهتر از دیگران می دانسته دلیل است که آن مرد یک باور بسیار استوار به خدا و اسلام بیداشته این که ایراد میگیرند که به پیغمبر نسبت حضیان داده راست نیست گفته است این رجل و هیچ هج به معنی سرسام است نه به معنی حضیان ازیان از کمی خرد برخیزد ولی سرسام نتیجه بیماری باشد خب برمیگردم به این مطلب که که معتقد عمر پیغمبر ببخشید معتقدی که پیغمبر فردیست مثل افراد دیگه از معجزه و ارتباط نزدیک با خدا و از یعرفا مبراز منابراین این که چیست که سرسامم وقتی مریض شد سرسامم میتونه بگه عمر گفته این مرد سرسام میگوید و این گفته به پیغمبر بر نخواهد خورد زیرا یک پیغمبر چنان که بیمار گردد لاغر شود رنگش زدگیرد همچنان سرسام گوید سرسام دنباله بیماری باشد و به کسی بر نخواهد خورد بنابراین میگه پیغمبر مثل آدم همه ما آدم عادی بود وقتی بیمار میشد صورتش زرد می شد، رنگش زرد می شد، بعدش هم سرسام میگیره مثل همه دیگه و این به کسی بر نمیخوره. اگر برانگیختگان از این چیزها بر کنار بودند خب در اینجا هدفش رو می گه. اگر برانگیختگان پیغمبران از این چیزها بر کنار بودند بایستی پیش از همه از بیماری بر کنار باشند و هیچگاه بیمار نگردند یک پیغمبری که بیمار شده سرسام نید توانت گفت و جای شگفتی نیست از آن سوی شما میگویید فیغمبر بی سواد میبود و نوشتن و خواندن نمیتوانست پس چگونه نامه و کاغذ میخواسته که چیزی بنویسد که سبی به دنبال این مطلب یک بار دیگر حقانیت امامان را زیر سؤال برده در همین کتاب کتاب به خانید و داوری کنید که همون کتاب شیعیگریست تکرار میکنم با یک مقدار تکمله به دنبال این مطلب یک بار دیگر حقانیت امامان را زیر سوال برده و میگوید که امام یا پیشوا برای اینکه بتواند در بین مردم مطرح شده و بر آنان رهبری نماید، نبایست که مبارزه اجتماعی کرده و سعی کند حکومت را به دست گرفته و جامعه را ارشاد نماید. نه اینکه در خانه نشیند و تقیه کند و انتظار داشته باشد که مردم او را به انوان پیشوا بپذیرند پذیرند چه گفت است که از 11 تن امام که بودند کسی جز امام علی ابن عبی طالب خلافت نکرده و کسی جز حسین ابن علی به طلب آن نکوشیده و از بازمانده حسن ابن علی امام دوم است که به خلافت رسید و آن را نگه نداشت علی بن الحسین امام چهارم چندان گوشگی رو آسایش خواه و چندان گریزان از این کار می بود که چون در سال شست و سه, شست و سه هجری مردم مدینه به یزید شوریدند او خود را کنار کشیده از شهر بیرون رفت و به یزید نامه نوشته از همدستی با مردم بیزاری جست از محمد الباغر امام پنجم، کشری میگوید من جز گوشه نشینی سراغ نمیدارم جعفر و صادق امام ششم شش را گفتم که خلافت را میخواست ولی به هیچ کوششی در انکار در آن کار برنخواسته است خلافت را میخواست ولی به هیچ کوششی در آن کار برنخواسته است از ترس جان به یکبار بار اون را نهان می داشت پسر او موسی کازم امام هفتم گذشته از آن که همچون پدرش از خلافت را بسیار نهان می داشت دستگیرم شد و بیست و هفت سال در زندان به سر برد پسر رو علی علی یور رزا علی ابن موسر رضا امام هشتم را معمون و یهدگر دانید دیگران جز خانه نشینی و خشگذرانی کاری نداشتند آیا این است معنی برگزیده شدن برای خلافت تصدی انتقاد خودش رو هر لحظه که میگذرد هر ای که می‌نویسنی می می‌نویسد اما می می‌کند شدت نمی‌بخشد وی درباره این کشیایان نسبت به معجزه ببخشید وی ای درباره این کشیایان نسبت به معجزه به امامانشان وی ای درباره اینکه شیعیان نسبت معجزه به امامانشان میدهند میگوید جایی که پیغمبر معجزه است، چگونه امامان میتوانستند این قدرت را دارا باشند در صفحه 150 از اعتقادات شیعیان نسبت به امامزاده ها و گنبدهای قبور امامان باطل سخن میراند و این عمل آنان را شریک میشمارت شریک میشمارت و این بیان تاریخ تاراجهایی که به وسیله قبایل مختلف از این قبور به عمل آمده است و خونریزیهایی هایی که در کنار این گمبت ها انجام یافته است خطاب به شیعان می نویسد یکی نمیپرسد پس چرا در این خونریزیها ها معجزه از آن گمبت ها دیده نشد آیا که با این داستان های تاریخی شما هر زمان دروغ دیگری درباره معجزه ساخته بیرون می در درباره گرگه و زاری شیعیان به کشته شدگان کربلا نویسد که این عمل چه سودی می تواند داشته باشد یک عملی اتفاق نیفتد وقتی اتفاق افتاد ناله و فقان چه اثری در آن دارد آنگاه به عقاید خرافی شیعیان که درباره روز رستاخیز ساختند حمله می کند و می نویسد که آنان میگویند در روز رستاخیز خدا در بارگاه خیز می و پیغمبران در جلوی او صف بسته علی لواول الهند را پرچمش که پرچمش از مشرق تا مغرب و بلندایش هزار سال را هست به دست خواهد گرفت <تصفيق> ببخشید. امامان از شیعان در پیش خدا میاندیگری خواهند کرد و خدا گناه تمام شیعان را به سنیان خواهد داد عجب ادالتی؟ این حرف بنده است توضیح میدم عجب ادالتی؟ علی از آب کوسر به سنیان که از گرمای آنجا به شدت تشنه خواهند شد نخواهد داد همه در مورد طبع رایان که به یاران محمد دشنام میدهند سخن میگوید و عقاید خرافی آنان را در این مورد به شدت مورد حمله قرار میدهد از عمل تقیه که در بین شیعان را دارد خورده میگیرد به این ملایان را شماتت میکند از این بابت که به خاطر برکرسی نشاندن عقاید خیش حتی به قرآن نیز دست زدند می نویسد برخی از ایشان در گستاخی گام بالاتر گزارده راجه ها یا جمله هایی که, خواستشان ساز... که با خاستشان سازنده است، به آیه های قرآن افسوده و دو سوره جداگانه نیز یکی به نام سوره نورین و دیگری به نام سوره الولایه ساختند و به نام این که در قرآن میبوده و ابوبکر و عمر و عثمان انداختهاند قرآن دیگری پدید آوردند چه گفتهاند که گفتند این قرآن این قرآن درست در نزد صحابه دام راست. که چون ظهور کرد با خود خواهد آورد. سپس یک بار دیگر صفحات زیادی در مورد مهدیگری و امام زمان نوشته است و اون را زائده عقاید خرافی شیعیان انگاشته. و روایات مربوط به آن را به جمله واحی و می نویسد اینکه گفتند امام زمان پس از ظهور خون حسین را خواهد گرفت بنی امیه یا بنی عباس را خواهد کشت اکنون که نه بنی اومیه مانده و نه بنی عباس دانسته نیست مهدی چه کسانی را خواهد کشت و آیا به این نویدها که آشکارا دروغ است چه باید گفت کس در گفتار چهارم زیانهای شیعیگری را برای جامعه مورد بررسی قرار داده است و آن را با خرد سازگار نمی داند به زیارت رفتن آنان را با اقتصاد کشور مغایر می داند به گمان وی افکار شیعی موجب گمراهی مردم و پستی فرهنگ جامعه می و دروغویی را در کشور رواج می داد. در این باره یک بار دیگر استناد به روایات و حدیث آنان در مورد امام زمان کرده می نویسد در باره امام ناپیدا گذشته از دروخهای دیگر چون گفتند دو شهری هست به نام جابلقا و جابلسا یکی در مشرق و دیگری در مغرب و امام ناپیدا در آن دو شهر می باشد اکنون که همه جای کره زمین شناخته شده می باشد شما از ملایان بپرسید جابلقا و جابلسا کجاست از شهرهای کدام کشورهاست. در مورد واقعی کربلا می نویسد در حالی که بازمندگان حسین پس از یکی دو سال واقعی کربلا را فراموش کردند و با خاندان یزید سازش کردند شیعیان پس از هزار و سال هنوز به این داستان عشق می‌ریزند. در این باره می نویسد که گفتم علی ابن حسن با یزید داشتی کرد و با او دوستی نمود سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویانه شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او خوارها عشق ریختند سالها پس از آن زیسته و زن زبه شده بود که سپس نیست زن عبدالملک بن مروان گردید و با خوشیها زندگی کرد سپس در مورد سنت های از آداری شیعان می نویسد. تینه زدن، زنجی کوفتن گلی بر اومالیدن خاک به سر سر خود شکافتن، جستن و افتادن، نعره کشیدن و این گونه کارها جز نشان دشخوهی و گری نیست. جیعیان این را هنری پنداشته و اگر در میانشان تماشاچی یک یا چند تن اروپایی باشد، به نام خودنمایی بیشتر کوفتندی، و زدندی و بلندتر نرها کشیدندی انگاه کستوی سخنی چند درباره باری زشتی انتقال استخانهای مردگان شیعیان به جوار قبور مقدسین خیش می نویسد این عمل آنان را علاوه بر نادانی و بیخردی موجب پخش میکروب و انتقال بیماری در جامعه می داند. در جای دیگر وی در مورد دو رنگی و مردم فریبی ملایان سخن میگوید می, می که در سالهای پس از شهریور 20 که به خاطر جنگ و اشغال کشور به وسیله قوای بیگانه کمیابی ارزاق و در نتیجه گرانی آنها در کشور به وجود آمده بود ملایان این پیش آمد را به حساب بیگینی مردم گذاشته و از منابر می که چون مردم نماز و روزه را ترک کردند زنها بیهجاب شدند مجالس روزخانی تعطیل شده است زیارت قدقن شده است لذا خدا به غضب آمده برای تنبیه مردم این بلاها را فرستاده است <تصفيق> آنگاه با خشم و تندی قلم مخصوص به خودش می نویسد ای بی خدا از رو باز کردن زنان تهران که می جوید آن هم از بچهان و زنان بوشه رو مندر اینان یعنی زنان تهران رو باز و خدا به آنان یعنی به به افراد مردم بوشهر رو مندر خشم خش می گیرد پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه رو بازند خدا به آنان خشم نگرفته تنها از رو باز کردن زنان ایران خشم میگیرد خاک بر سرطان ای نادانم بالاخره پس از انتشار کتاب فوق کشفی از پایین و کتاب دیگری به نام بهایگری تلیف و منتشر ساخت در این کتاب نیز به الزامن میبایست از امام زمان شیعیان سخن گوید زیرا که علی محمد باب ابتدا به نام باب امام و سپس خود امام ادعا کرد سعی در این فرصت نیز حملات کوبندهای بر علیه امامان و به ویژه آخرین آنان مهدی و عمل آورد و بار دیگر بیشتر از پیش باورهای شیعیان را به باد انتقاد تنزال و گرفت به دنبال انتشار این دو کتاب اکثریت مردم شیعه مذهب جامعه و بار دیگر بیشتر از پیش باورهای شیعیان را به باد انتقاد تنزالود خیش گرفت به دنبال انتشار این دو کتاب اکثریت مردم شیعه مذهب جامعه اکثریت مردم شیعه مذهب جامعه یک دست و یک زبان بر که به جبه گرفتن و این همه او از گفتار و نوشتار باز نا و بیان عقیده را به انوان یکی از حقوق مسلم شهرفندی برای خیش مجازان است او را به دادگاه کشیدند و زمانی که حکم احزارش را به بازپرسی را گرفت دریافت که اینک آغازی است بر پایان را